اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصل الله على سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین ولاعنه دائمًا على دائمًا شعین اللهم اغفر لنا جميعا المشتغلين وارحمنا يا أرحم بحث درباره مقاله حضرات اخباری ها بود که از کردن مبدع این طریقه مرحوم ملا محمد امین استرابادی رضوان الله تعالی علیه بود طرح رو که ایشان داد یک طرح خاصی بود بعد علمای اخباری بعد مطالبی رو که آوردن یه مقداری با ایشان فرق داره و کم و زیاد داره و شیخ رضوان الله تعالی هم مقداری از عبارت ملا محمد عمیم رو آورده که تصادفاً اون مقدار خیلی رابطه دقیق با بحث نداره لما من توضیحش بعد عرض میکنم یه مقدار هم از کلمات دیدیه آورده اون مطالبی که از کلمات دیدیه آورده اینها در مطالب مرحوم استرابادی نیست حالا این توضیحاتی که بعد عرض میکنم که مطلب روشن بشه که چی بوده و چی شده و مراد آقایین چیه اصل بحث در اینجا بود خب آیا مخصوصا بعد از شیخ چون علم رو در باب تنجز احکام تدریه صرف گرفتن خواهی نخواهی بی این نتیجه رسیدن که اگر انسان علم به حکم پیدا کرد از هر راهی باشه حکم منجز میشه خلاصه این مطلب لازم نیست که حتما نمیشه گفت از این سبب علم حجته از این سبب علم حجته این تصوری بود که شیخ رزبان الله تعالی علیه و از کن قبل شیخ هم سابقه داره نه اینکه حالا منحصر به رو شیخ اما این به این صورت منظم و مرتب و ترتیب آثار این تقریبا در اصول از زمان شیخه قبلش به این صورت حالا مباحث قدر بحثی باشه جداگانه باشه اینها به این صورت نبود و چون این طریقی شد برای هر شخصی باشه هر هر سببی باشه در هر زمانی باشه در هر مکانی باشه هیچ فرقی نمی‌کنه فرض کنه انسان در مدینه باشه پیش پیغمبر باشه حرف پیدا در کوفه باشه در زمان ما باشه در سال 1000 باشه در سال 200 هجرت باشه در خود زمان فرقی نمی‌کنه جهاتش هیچ زمان و مکان و به اصطلاح سبب و شخص و این خصوصیات در علم طریقی صرف هیچ تأثیری نداره و وقت احکام هم تنجزشون به علم طریقی صرفه پس طبیعتم فرقی نمیکنه. نسبت به این جهاتی که الان عرض شد هیچ نوع فرقی وجود نداره اینی که چون مرمون ملا محمد امین استرابادی در این کتاب فوائد مدنیه عباراتی داره قطع حاصل از غیر کتاب و سنت مثلا این دلیلی که غیر از کتاب و سنت باشه قطعی نیز این منشع شده که این بحث پیش بیاد بین آقایان و ارز شد که این بحث کشید بونجه هایی که من وارد بحث شدیم و توضیحاً ارز کردیم مرحوم نایمی چون روایات آمده که نهی از قیاس شده و یک روایت صحیح هست که ظاهرش اینه که قیاس حتی اگر موجب علم هم بشه آقل قبول نیست این قیاس موجب علم بشه این در روایات نبود این عنوان موجب علم در عبارات قدم از ها ما هم نبوده اما در میان عبارات بعضی از متخکرین اصول آمده تو همین کتاب استاد ایشان استاد مرحوم شیخ هرزاری من به مناسبت اینه تو بحث ملازم و آخرای این کتاب معروف اصول ایشان نه زوابتون کتاب دیگه مفاتی مال مرحوم سید محمد مجاهد نمی کنه از برد که از خیاس این پیدا شد این علم هجته هست کردم قبل شیخ هم این مطالب مطرح بوده. نه نه اون به این صورت مرتب و منظم و بندی تقریبا از زمان شیخ رزوان را تالا علیه ببند پس این بحث اینجوری به ذهنشون آمد که این آقا گفتن اگر از کیاس علم پیدا شد اون علم هجته و مرموم استراباد و اون روایت این است که اگر علم پیدا شد چون گه یبلغ نهانه نو بالعراق و نقول اناللوی جایبهی شیطان یعنی این کنایه از علم یعنی ما یقین داشتیم این باطنه شوشتن داره علمه بخیر علم پیده از قیاس عبارت عبارتی که در روایت سعیه عوان ابن تقلیبه این صورت خب به هر حال این مطلبی بود که در کتب اصولی این آمده اصحاب آمده به اثر توجیه این مطلب بود و در این حال توجیه بعضی از احکام که در حالت جنگ عوض میشن یعنی زدشون مقید به علم مرحوم ناینی یه راهی رو پیشنهاد کردن که بگیم احکام مقید به علم و جهل اما به نتیجه‌شون تقیید میشه این خلاصه مبنای ناینی که توضیح دادیم توضیحش هم مفصل گذشت و مرحوم استاد می‌فندن اطلاق داره در مقام جعل اطلاق داره شامل علم و جهل میشه و اینطور نیست که احتیاج به نتیجه تا اطلاق یا نتیجه تقیید داشته باشیم لذا این راه ایشان رو راه مرموم نایمی رو نفسنده و در نتیجه از هر راهی علم پیدا بشه کافی این خلاصه صحبت و در اون رباعتم استاد همون مناقشه معروفی که بعد از مرموم شیف الان این مناغشه خیلی معروفه اگر در جایی امام نهی از علم کردن در حقیقت مراد این است که تو علم نداری میخوان علم خراب بکنن اینجا آن معروفیش ها چنده باشین تو رسال اشارات بشتر و بعدی ها در حقیقت نحیه از علم نمیشه که اگر میگن محیا عبان اخرتنی به قیاس تو بی خود علم پیدا کردی استودان همین توجیه که توجیه معروفیه توجیه خاصی نیست که این روایاتی که میگه این کار نکن تو بیخود خود علم پیدا کردی این در حقیقت میخواد مناغشه ای بکنه که اون علم متزرزل بشه اون علم تبدیل به زن بشه اون وقت نحیه ازش بشه نه اینکه با فرض بقا علم مراد فرز بقا نمیدوند مطلب مطلق روشنه پس بحث سریعی نیست روایت داد بگه شما اگر علم داشتی به علمت دا عمل نکن مرموم نایمی هم همینطور به ذهنوارش رو همینطور است که با وجود علم نحی نمیشه کرد و میگن بله میشه اینطور بگه اگر حکمی مقتوع اون به بود از این راه اون حکم ثابت نیست این میگه میشه به نزید تقییم این راه مرموم نایمی استاد هم این راه رو قبول و طبیعتا هم حق انصافا با استاد انصافا در این مقدارش حق با استاده اگر این قابل تحکم قابل تغییری به علم نباشه با نتیجاً نمیشه چه فهم میکنه؟ چه فهم میکنه؟ با نت... اون یک مشکل واقعی داره یعنی نمیشه حکم علم معیار به علم به حکم بشه بگم علمم طریقی صرف باشه چه با نتیجه چه با واقع نتیجه در اون جهت فرقی نمی‌کنه اون مشکل مشکل واقعی است و نسبت به این سه مورد همین دو مورد استاد بعضی ازجهاست مورد سوم بوددن که صبح باشه اینجا نیورده. استاد جواب جوابدن که از با تغییر به علم نیست بلکه از باب اجضاع شاره در مقام انتصاب به این ناقص اجض کرده بین عمل ناقص این هم خلاصه بحثی بود که به این استاد و شاگردشون. ما ارس کردیم حق در مقام این است که تکالیف نسبت به مقام اه نسبت مقام ج نسبت به علم و اطلاع اطلاق که ندارن اصلا تصور اطلاق درش نمیشه جای تصور نیست اصلا جل مقامی نیست که توش علم به حکم لحاظ بشه یا جل هیچ کدوم اصلا جای بحث اطلاق در اونجا مطرح نیست چون علم هیچ تأثیری تو مقام رو نداره این اگه مرادشون مقام رو باشه اگر مراد آقایان هم به تعزیز من چون حالا این مواسط استاد که نبودی نایمی اگر مرادشون مقام جه باشه به هیچ نحبی نمیشه اون مشکل واقعی داره این واقعی در مقام اعتبار اون اصلا قابل تعبول نیست و اما روایت عبان رو حمل کردم برای اینکه که تو بی خود علم پیدا کردی خب این خلاف ظاهر نه، نفرانه علم شروع پیدا کردی این که خب خلاف ظاهر اصلا من انز کردم نه روایت عبان نه غیر روایت عبان هیچ نازر به مقام علم نیستن، اصلا تو این روایت تو این مقام نیستن میخوان میگن این طریق باطله قرآن تصرا قران برعیه مثلا فلیته بالا مقدون این تو آتشه حالا از رعیش میخواد علم پیدا بشه میخواد اصلا تو این این روایت تو این فضا نیست که علم پیدا بشه اگر ما باشیم و ظاهر اون روایات اصلا تو این فضا نیست که اصلا میخواد میگه عمل بین بی قیاس و این ورش باطله میخواد علم بیاد میخواد نه خب اخر میگن با علم طریقی نمیشه. خب باید یه مشکلی یه جایی هست. باید مشکل حل بشه. با تصرف در روایات که مشکل حل نمیشه. ما باش اظهار روایات که این توجیهات آیات رو نمیپذیره. هم بگویند روایات رو بر صورت مثلا اینکه تزرزول در علم ایجاد بکنه. خب اون مشکل ها بذاره. مثلا این تمامش خلاف ظاهره. اصلا این ها مطرح نیست. در روایات در روایات قیاس این صحبت ها مطرح نیست که این قیاس وقتی حجت هسته. حجت نیست که علم پیدا نشه علم پیدا شد و حجیت داره توی این مقام نیست. روایت قیاس روایت من فسر قرآن برعیه من اونون من مثلا فسر مزمونه مزمون روایت که این روایتی که باز شده اصلا توش بحث استثنایه علم نیست اصلا بحث این نیست بله تو روایت کذب علی من کذب علی متعمدن چرا؟ اون عنوان تعمد داره تعمد هم علم نیست یعنی تو میدونی این کلام مال پیغمبر نیست و پیغمبر نسبت بودی در دو میگه عمدن دگونه ولی وقتی هم عرض کردم الان نمیخوام وارد بحث بشن همون روایت من کده برم ایده از سنی چه از قدیم چه از جدید یعنی از اصل صحابه بگیریم که من نمی الان اسم ببرم تا همین معاصری نموس هم. ابواب السنن مال محمود ابوری اونها معتقدن این نیست من کده به علی فرایت بربر متحمدن کش نداره از قدیم از صحابه آله از صحابه زبه چون پسرش میگه یا پدرش، چون حدیث نمیه من از پیغمبر حدیث نمیه میگه نه چون پیغمبر رو من کده به علی من میترسم که از بشه از صحابه بگیدین تو همین زمان ما در میان اهلشون سنت یه بحثی هست که آیا این متحمدن تو حدیث هست یا تو حدیث نیست؟ الان قولی هست به چه معاصر این چه از قدیب اصلا منکدبه هست منکدبه هله متحمدن توش نداره و لذا اینا اصرار دارن تا انسان یقین یقین برواید پیدا نکنه این نکنه تا شواهد کافی تا چند جا چون احتمال داره کذب باشه و کذب واقعی بر رسول الله حرامه نه کذب متحمدن حالا اون بحث دیگر ریست من نمیخوام بارد اون بحث در اینجا بشن پس بنابرا یک سوال این است که در مقام جهل انصافن نیست یک سوال این است که آیا روایات رو که ما داریم روایات قیاس روایات رعی محدود بشه به غیر علم این خلاف ظاهر داره محدود روایات عبان باشه یا غیرات اصلا چین چیزی نیست بر چین چیزی در میان فقهای های سابق ما هم نبوده نمی بگن که آقا من علم پیدا کردم اگر رأی و قیاس حجت بود من توضیح کافیش ها عرض کردم بازم میشاله شد در خلال این بحث بیار در قرم اول رأی بوده در قرم دوم اسم شده قیاس قیاس و رعی یک نوع سازی در حیره یعنی چی سازی اینا میامدن میگفتن ما مواردی داریم که در شریعت حکمش نیامده خوب دقت بکنیم نه اینکه که داشتن چون صحابه بود دیگه گفتم پیغمبر نگفتن این از اون میفرسید گفتن نه فاز که همین مثال حد به اصطلاح شرب خمر گفتن پیغمبر چیزی معین نکرد لذا چون معین نکرده اما 4 تا یا پنجتا تا از حدود در قران آمده، فضا سازی یعنی این شرب خم رو به کدوم یکی از اینها ملحق بکنه ملحقش کردن به حد قصر به حد سرقت ملحقش نکردن به حد زنا ملحقش نکردن اینی که نقصد کمی رو مومنیم فرمود نه و ازا شرب سکر و ازا سکر هزا و ازا افترا و حد دل فریه سمانون این نوع رأیه این نوع قیاس این اسطلاح بودن قیاس ایشون آمدن شرب خم رو قیاس کردن به حد قز چون ما داریم که شراف بخونه خب پرش ناموسیت میده اون قیاسش کردن همون رو این یه نوع سازیه، اصلا اینا معتقد بودن ما در شریعت میتونیم فضا سازی بکنیم مثلا شربخه فقط حرام نیست باید یک کیفری هم برایش قرار داده بشه حرام صرف نیست مثل دروغ نیست که حرام صرف باشه نه یادن برای دروغ بگن آدم که شراب بیخوره دروغ هم 80 یا هشتا تازیانه بایدن دروغ بزنن اینا آمدن یه مقایسه کردن که مثل شربخه باید یک نوع جزایی یک نوع کیفری داشته باشه با چی؟ فقط و که نمیخوره از زانیت و زانی واحد کلو آدم معت جلده جلد. تا تازیان هم کنه رفتن به 80 تا به قطع رفتن رو هشتت تا تناسب پیدا کردن خب ممکن است در همونجا اصلا در اونجا صحبت این نبود که علم پیدا بشه یا نشه من اینشانا بعد توضیح میدم مراد از حجیت زنم همینه یعنی اونم ولیزا اینم فقط برای مشهد قائل بودن مثلا یه عوام بیاد بگه آهد به شربخم 80 قبول نمیکردن. کردن می گفتن این فضا سازی وظیفه مشههده. اسمش تحری بود اسمش اشتهاد بود اشتهاد یعنی بذل جهد کردن نیروی خودش رو سرف بکنه احکام الهی رو نگاه بکنه احکام ثابت و قرآن و سنت رو پیدا بکنه این یکی رو به یکی ملحق بکنه اسمش قیاس بود اسمش رجع بود دوشنجد. چون میگفتن این مشتبه این فقیه این به احکام شریعت آشناس این فضاسازی او حجت به خاطر بحث سر قطع نبود شد؟ سر بحث سر حجت بود میگفتن اگر علی بن ابی طالب بکنه حجت اما یه فرد عادی فضا سازی بکنه حجت نیست این بحث قرد که پیدا شد و بحث دیگه را اشاره میکنم اینشالا واضح میشه خدمت تمام بحث سر این قسمت بود این اصلا صحبت علم نبود حالا ما علم رو در نظر بگیریم در مقابل ذهن اونا میگفتن فضاسازی و اخذ رعی و قیاس از فقیه از مشتهد از ملا اگر انسانی آشنا و اخوان اصلا صحابه این جایزه این, این حجت جایزه نیم حجت. نه قطع بیاره قطع نبود. پس این که مرحوم استاد و دیگران فرمودن این روایات قیاس مفادش اینه که قطع شما قطع نیست این نیست اصلا دنبال این خطا نیست و این که مرحوم ناینی می که حکم در مقام جل اگر مقتوم به از طریق قیاس بشه جل نشد اصلا حکم با قطع و جل, جل و وز دیگر کنه تو مقام وز دهست جل علم و مطرح نیست لذا ما عرض کردیم این سنخ بحث به یک نتیجه واضحی به تصویر می‌آد. اینا اون مواردیان که روایت آمده سه مورد عرض کردیم در روایت آمده یک مورد جهل و اخفاق بر اساس سنت و فریزه تصویر میشه. یه مورد تمام در مورد قصد که جهل باشه که قبول نکردیم، خارج وقتش قبول کردیم. یه مورد هموال صوم مسافر در حال جهل بود که در روز ماه رمضان قبول نکردیم در غیرش به مسئله سنت و فریزه حلش کردیم. اصلا ربطی به علم نداره به این مناسبت با بحث سنت و فریزه رو پیش کشیدیم البته بحث بحث سنگینیه خلاصه نظر در سنت و فریزه اینه که اصولا در شریعت مقدسه دو نحوه جعله یک جعل الهی و جعل فریزهی ای که این جعل خصائصی داره هم خصائص بیانی داره مثلا بیانش غالبا در قرآنه و وضعش در میان مسلمان ها غالبا قطعیه. غالبا ندائمه از بس که فراوان یکی هم سنن پیغمبره که این سنن اصولا از نحوه جعلش توسط رسول الله محدودیت داره محدودیت هاش مثلا ممکنه گاهی واقعی باشه مثلا خداوند متعال ربا که ربای نسیه باشه مطلقاً حرام کرده هرچی چی باشه اما پیغمبر اکرم که ربای نقد رو حرام کردن در خصوص مکیل و موزون در معدود حرام نکرده. اگر معدود باشه اون رباید این خصوصیاتی داره سنن یکی از اون خصوصیات در حالات عذره این به لحاظ مقام جلد به لحاظ مقام تحبیرم اطلاقات فریزه همیشه هست در حالات عذر هم هست در حالات غیر عذر تغیر نخوره به در ح... این دو تا نکته یک نکته مربوط به جنب یک نکته هم تعبیری البته خب من می‌دونم این مطلب خیلی سنگینه در عوض آیمان ما نیومده تو درس ها اونجایی نشدید این یک از همش مهم‌تر اگر این باز بشه یک فقه جدید درست میشه که خیلی عوا خب مثلا گفته اگه وضو گرفت نمی‌دونه جاهل بود مثلا پس در دهات بود که فقط چیزی بود آیه قرآن دستاتون بشوین دست چپ اول و بعد دست راست خب آقای میگم وضوش باطله طبق این تفسیر درسته جاه چون فلسفه رو اگیر کن قسل اگیر که مطلقه که توی چپ و راست که نكره این که راست و چپ مقدمه این در سنت پیغمبر اومده خب جاهلیت بود یه بعد بحث و ذره ولی بحث ببینید یکی ما علما نه جهل و قصوری و تفسیری اینها نداره یه بحث این که اوضش اجازه بفرمیشه رو شاید تو بحث برایت مراد از اون اوض بیده که حالت است که مکلف در حق خودش احتمال بطلان نده این مراده ببین قصور مصور رو بزهیم کنار یعنی اون دهاتی الان داسیا بهتر از فقهای علم به وسیکشون اون تقلیدی که میکنه قت ایشون قبیله تا خود ساقی که فتو داده اگر او نظرش اینه حالا فرض تو مقلد یک سنی بوده و رفت شیعه شده شاهرته اینو شاهد سالسه گفت شیعه شده اون چون سنی ها خیلیشون قاره اشکار ندن سمت چپ و راست هم دیگه مدتها اصلا خیال به این وظیفه اصلا احتمال خلاف نمیداده این خیلی التفات که شیخ خود در رسائل از این جدیه میادار کارساز انصافا خوبه که در مقابل ارتفاع براد قفلت خوب دقت کردی اصلا انسان حالت، حالتی داره که احتمال بطلان نمیده خب هم میگم بله خب همین مشکل همین این مشکل کلی همین اصلا جوری عمل میکنه خب پدرش مادرش هر جو نماز کندن خونده با اون اقوام بعد از که خب بله هم بناشون بهینه که اگر بعد مطابق با تقلید مرجع بعدی عمل شد یعنی فقیه شد درست اگر به سنت خورد اگر این این جهته سنت بعد از بچه فقیه بشه عامی بشه این بحث رو در همین حوزه های ما تصوره می تو اون دهاتی که تازه شیعه شده سالها سنی بود بشه حالا شیعه شد رفت سفر روزه بگیره اصلا اصلاً نمیفهمم احتمال نداره در حوزه شخص بحث تخص نص است بحث فص ببینید تقصیر یعنی شما جهل تسین چند جایهای خوبی جهل تقصییر میه، یه بحث اینه که اصلا جهل تقصیری منصرف از مالای علمونه یه بحث اینه که جهل تقصیری اصولا شامل ادله تعمد میشه. کار به اون جهت ننداره. یه بحث سوم این بحثی است که ما پیش میکشیم اصلا میلیار تقصیر و قصور نیست. یه جوریست که خیال میکنه یعنی واقع پیشش واضحه وظیفه الان اینه. هم اغلاییه تا حالا سنی بوده تو سفر روزه بیگرفته میده شیعه شده بعدن شاهد سالسه و شیعه شده باز تو سفر روزه گرفته دقت بکنید این مراد ما این اصلا بحث فلس این میشاره نره فلس این چیه این شیعه شده و نماز پسن در سفر تمام خونده ما قرعه علیه آیت و تفسیر و فسرط یعنی اینجور بنا کردیم نه جهل اصطلاحی ما اون ما زنیم به هده سنت به نظر ما این هستم مرا ها اون وقت اینجا ببینید من الان اجازه بود فرماید من الان بگم یه بحثی دیگه این که موارد و چیه من بس این بحث الان اجازه بدیم من توضیح بدم. مثلا ببینید ما یه روایت داریم صحیح زوراوی میگه اگر جاهل بود در لباسش خون هست نماز خون بعد فهمید میفرما نماز درست نه میفرماد اگر آلم بود فراموش کرد نماز خون بعد خون دیریادش آمد میفرما باطل بود بین جهل و نسیان امام فرگوز فتح آمام بر همین نگه بود ما این بحث مطرح کردیم که اصلا فرق بین جهل و نسیان موردی نباشد ما موردی فهمیدن به همون تار در لباس بیایم بگیم اصولا خود نسیان اوزرنی میشه جنب. و جنباز میشه همسا ارز کنم فوقاها نفهمیم ترخی میکنم چرا؟ چون ما ارز کردیم معیاره در تنجز انتقاش صورت در ذهن این معیاره در نسیان هست انتقاش صورت رفته از ذهنش رفته فهمید که اینجا خونه دید لباسش خونده بگیم همین که دید لباس خونده این برای تنجز کافیه ولو نسیان پی لذا اگر این که نوشتن آقایون اگر رفت سفر فراموش کرد مسافر نماز تمام خون میگن در باز اعاده بکنه اما اگر جاهل بود این فتوه آقایون میگن اعاده نکنه نماز تمام خون دقیق بکن میگن من کلبی بحث من میگم ممکن است یمکن انیغال بنده که نگفتم درم طرح می میده چون در حوزه های ما نبوده ما اول رسمون اینه که یک تشریف ایجاد بکنیم که روش فکر بشه یعنی بیاییم اون موارد عذر رو یک ضابطمندش بکنیم روشن شد مرادم نمیخوایم فقه رو حالت یک بحثی دارن آیوم که میگن فلس در شوبات موضوعیه لازم نیست معذل میاد کسی شک داره که خمس در لادنه به فحص بکنه به تو آشپزخونه غیر آشپزخونه ببین چی مونده ابزاره آیا وجوهاتش برن حساب قرن سر سال فحص بکنم اینو اونجا اینجا شوبه موضوعی از بر هر جا یک شوبه بسیار معروف است که چرا فحص در در استطاعت اگه شک در استطاعت کرد میگن فحص بکنید من هم اوناییه هر کدوم یک های دادن خود بنده حساب باز هستم خواهد راحت جواب خاص خودمون بدیم من الان مقدماتش رو ارزمون توضیحاتشین در خلال بحث این مطلب رو که ارزم دادم یه بحث اینی که حقیقت و من الان بارد این بحث نشدم یه بحث اینی که اصلا این قائده سنت و فریزه ولاتن بود سنت الفریزه را براتون توضیح بدن. البته وقتی اینو من قبول دارم. الان فتوا برای اینه که اگر جاهل بود مقلد سنی بود فتوا اون اهل سنت دست چپ رو بر دست راست در حضور مثلا مقدم داشت بعد حال شیعه شده اون نمیدونست. مدت ها این کار آوین گفتن وضواش باطل نمازvalidate بکنه درسته خب ممکن است با قاعده به قاعده لا تنقضه سنه الپریزی چون تحصیل و ادیا کردن اطلاق داره این سنت بوده که گفته دست راست اول باشه و اینقدر این موارد هستن بخوام بگم علما ان شاء الله بنای اصحاب مثلا تقدیم رأس بر بدن خب این تعریف هست کسی قص میکنه یا سیات فراموش کردن که جهره عذر نیست سر رو مقدم کرد بعد مقدم نکرد اول دست چرد شد بعد دست راست بعد سر خب ما اگر باشیم این ظاهرها آیه مبارکه بلا جنبانه الا آه بریست سبیل حتی تق تسلو این تق تسلو که دوش تقیید نکرده این به سنت پیغمبر اول سر بعد دست راست بعد دست چرد. اینجا جاهل بوده سنت حاملش نمیشه همین که تمام بدن شد کافیه دیگه بحث فقهی وارد نشی میگه شاید خود دارم گفتم تو بحثا به خود دارم برنگردم باحال بنابر اینکه اول دست راست را. چون این از سنن پیغمبر بوده اجمالا چون شما فرمودید من از بحث در این که این جزء سیره عملی رسول الله بوده محل کلام نیست این نه کلام کلامه یا الزامیه یا نه کان یا رسول الله کان از یوه ب عن یبد به میامنه خود کرمه یمین هم که دست راست از یمن چون خود پیغمبرم به الفاظ خیلی علاق که یکی اسم میکرد. این اسم بدداش عوض میکنه خود همین اسم عوض کنه اسم خوب رو یت... یتیم منو به کان رسول الله یب دعا به میامنه این جزء سننه پیغمبره سننه عملیه بس آیا این الزامیست؟ خوب دقیق بکنید. یا ام از الزام و الزامه؟ ذبحا در اون هم الزامی گرفتن در موضوع الزامی گیر اون بحث دیگه است اون بحث فریضه من نه واژه بحث فقط اشارات مبادئش هم عرض از خب یعنی اگه سنت به فریزه شما اخلال به سنت کردیم با فریزه به خودش محفوظه کار لا و الصلاه الا من خمز. اون اعاده که بطلانه فقط در فریزه است در سنن نیست می و سنت برای خب رسید. حالا الان اجازه بدید میرسیم به حرف الان میرسیم به حرف. اجازه الان میایم روزم بر ازون مثالی میذارم همین ان شاءالله پس بنابر این البته من شنیدم شن این مطلب رو کسی که نقد آتام بود از مرحوم بوجنوردی نقد کرد من از روی بوجنوردی نشیدم اوکی برای من نقد بوجنوردی بواسطه واقعا از از واسطه که مرحوم آزیا میفهمه اگر ما این ذیل لات و آداب بگیم یک فقه جدید میمون اگر این مطلب آزیا درست باشه این نقل درست باشه انصافا همینطوره این هم که برای شما تحجیب تا تحالا چون واقعا حق با آغازی است. اگر ما با شما لا تنواز سنه الفریزی یک فقط جدید میاد. خیلی مواد و عذر راحت میکنه خیلی نه مورد و مورد اصلا یک به اسطلاح اینجا چی میگن یعنی انقلاب می خیلی نمیخوام انقلاب فیخی بگم طرح از اینکه که واقعا یک فروع جدید و اصلا یک برداشته خاصی در اصول و تقیید و اطلاق و اصلا مباحث و اصول رو کلن به جای که بریم بحث حجج اصلا میوید رو کیفیت جرم یعنی یک مقدار زیادی از مباحث اصول که من همجه کردم در حقیقت جرم و کیفیت جرم در این شریعت مقدس این یک بحث ساده این مهماش نمیشه که تا زمانی که شکر یعنی هم هم ای نه نه این نه ظاهرا که کار بی یقین نشد این یک مطلب حالا اجازه شده یه مطلب دیگه این تا اینجا این من قبول دارم کار مشکل ما فعلا فقط تن اون دو سه که واضحه به نظر ما اونو که اصل سنت و فریضه یعنی در این که بعضی از جاها سنت و فریزه تطبیق شده لا تنقاض این که مسلم هم. این که جای شک نداریم ما این ضمن کنان در اسلام که ما یه تفسیر کلی بدیم این یه بردا مشکل داره در در این که تو جهره اخفات تطبیق سُنّ و فریضه که جای بحث نداریم بحث در اخلاق این تا اینجا این مطلب که انصاب به قضیه نه به نتیجه تقید درست میشه نه اطلاع داره که مرحوم استاد این اگه برگرده به مقام کجا به مقام جمع اما یه احتمال داره که این برگرده به مقام تنجز بیان دعوا را به جای مقام جمع چون بعد جن یعنی یعنی از جن فعلیت یعنی ابلاغ یعنی انزال حتی نعرسه رسوله بعد از اون تنجز که وصول به مکلق باشه و این تنجز اینجا هم مرادمون کبراز خوب نه موضوع خارجی که این شراب هست یا نه بول هست یا نه در اینجا این بحث میاد آن. انصافا این بحث جا داره بحث لطیفی هم هست. بگیم تو مقام تنجز اطلاق داره علم از هر رایی که شد علم تلیقی چطور شما تو موضوع خارجی میگیری علم اطلاق داره؟ تو مقام تنجز شما هر وقت رسیدین به هر اطلاق داره تو این مقام تغییر معنا نداره در مقابل این میگن نه این مقام هم هنوز حد شارع محفوظه خب لقد کنیم شارع میتونه تو مقام تنجز تصرف بکنه. حالا یه مثال عرفی بزنم و تطویق شرعی فرش که مقنن بیاد بگه آما قوانینی رو که پارلمان یا مجلس روز میکنه اونای حجته که تو روزنامه رسمی مجلس بیاد. شما از راه دیگه ولو این پیداکین به قانون ارزش نداره آیا این میشه نه حالا فرسان شما در یک مکان دوری از این, این دهی از این روزنامه رسمی اونجا نرسیده درقص میکنیم اما با تلفن فهمیدین مجلس تصویر کرده و بناس رسانه هم بشه و اما به شما رز... نمیشه تا رسانه معین که اون روزنامه باشه یه روزنامه غیره اون روزنامه مجلس پس اون روزنامه عمومی نوشته که مجلس چیزی رو کرده میگن نمیشه این هم نمیشه این اگر میشه برسر اینه که اگر ما علم به قانون بعد از ابلاغ و بعد از رسانهی کردن پیدا کردیم ولو از هر راهی باشه این کافی است یا سوال مقنن به ما و مقنن میتونه تو این مرحله تصرف بکنه بلکه بالاتر حالا خوب دقت بکنید دو تا تصرف هم میتونه بکنه یک ببین من مثال عرفی میزنم بگه اون حکمی که در روزنامه باشه این یک دو اون روزنامه باید تو شهرداری یا تو فرمانداری به دیوار باشه و الله نه مثلا روزنامه تو خیابون دید میگه حجیت نداره. آیا میشه؟ روزنامه تو خیابون پیدا کرد میگه نمیشه حرف اخباری ها اینه خلاصه حرف اخباری ها به شد حرف ملا محمد امین استرابادی خلاصش اینه یک این شریعت مقدسه ابلاغ شده انزار شده تماما به فعریت وزیده دلیل اکمل تلکم دی نکن پس ما فررتنا به قول ابنه هز. ابنه هز به این آله تمسک میکنه. ما فررتنا فر کتاب میشه همه چی ابلاغ شده. دو چند دو. قانون این... نه اینطور میگه میگه اگر شبیه به ابنه هز میگه. در کلام از میگه این شریعت اینطور شده. که باید در کتاب و سنت باشه. از غیر کتاب و سنت با فضا سازی بش رسیدید نمیشه نمیشه نمیشه همین برسام همینه میگه نمیشه اونا خیال میکنم آقال باید کتاب و سنت خوب دقت کنید دو این کتاب و سنت به بیان ام به بیان عبا نمیشه به بیان پس پسو عمر نمیشه به بیان عثمان نمیشه به بیان شافعی هم نمیشه مثال عرفیشم زدیم باید تو روزنامه مجلس باشه این روزنامه تو شردای آوزون باشه تو خیابون روزنامه رو بخری نمیشه آیا میگن فرق نمیکنه طبیعت و عقلایی در این جا فرق نمیکنه وقتی قانون خوب روشن شد به مرحله فعلیت رسید شما از هر رفتی من بعد ایشالله عبارت مولا محمد امینه برای توی میخونم اصلا مولا محمد یعنی استبده هر اینه خلاصه حربش یک کتاب و سنت دو کتاب و سنت به بیان عیمه من عوض سیار میکردم صادرانم گفتم اینا مثلا توی اطلاقات کتابی گیر داشتن من در بیانات چون محمدن این تقریم موزنش دارم بیخونم و خوندم مشغوله بالا دیگه نه ایشو تو تو هم نمیشه. حالا من اول نمیشه سنتان گیر نداره. نه به له تو تسوف میشه میکنه. الا نمیشه. من تا حالا تو البانده شده تسوف میپرت حالا نره کرد. ده. میگه نمیشه. باید بیان کتاب و سنت علمه. اگر علمه برش رسول الله به طرز لعینه. اگر ائمه عموم برایش قائل شدنش هستین، به الله نیست. به این روشن شد خلاصه پس اختلاف در حقیقت اینطور نیست که مرحوم ناینی و آی تو محلی جمعه در حقیقت خوب روح من مح... خب مقاله اول مقاله طرف رو بفرد برد بخواید مثالش هم خیلی واضحه در قرآن آمده ی اصلونه که ان المهید قال در زمان خون مثلا نزدیکی نباشه بسیار خود از زنها کناره بکنیم حالا خون قرد شده قسل نکرده اونا میگن اولا مسئله قوص این توی نمازه نماز هم اصلا در قرآن ذکر نشده خوب دقیقه بکنید اصلا بحث نماز حائز تو قرآن نکامدید نماز حائز کلن به سنت رسول الله قال علیه السلام اذا اقبلتن حیزه هستم حیزه بخونیم به فرق حیزه نکنیم اذا اون به اسلام وجه چی میاد؟ چیزی چیزی که خانم ها با خودشون هیزه اون پنبه ای است که خانم ها با خودشون برمی اون به کسرش اما هیزه خود اون حالته الا اقبلت الهیزه فدع الصلاه اصلا کلا فإذا اضبرد فقطس این بسندی ترک نماز کلا با سنتشه روشش اش اینا میگن یک آیا حکم زن بعد از این قطاع نیامده آمده افناتو لکم دینه کن چهارش بگدیم؟ پس این حکم آمده به قول ابن هست ما فرعتنافه کتاب میشه. به اون روایت ما من این یو غره بکن یا جنه یو واعد کن یا بعد نار الا وقد امرت به پس همه چیز آمده در روایات ما ما من این الا و جرافیه کتابون او سنتون الانم روایت اهل سنت اینطور میگن روایت نداریم یه ادهشون گفتن ما با فضاسازی حالا اون فضاسازیش بحث استصابه میگیم تا حالا حرام بود برای هم حرامه این شد اسمش استصاب اده یه گفتن این فضاسازی صالح نیست اسمش شد براعت اون گفت استصحاب را عقل حکم میکنه چون شرک نیمون اون گفت براعت رو عقل حکم میکنه بعدها در عبارات اصولین ما چون اینو کلمات مولا محمده میستعبادی که قبل ده هم بوده و این باید وقتی معنا بشه که عبارت سابقی بیاد حالا من اینشالله میخونم ایشون خودش چند تا از عبارت سابقی نورده از معقق و دیگران عقل پیش اونا یعنی براعت عقل پیش اونا نه استث بل مراقبه به عقل الستسخیم تصریح میکنه بعضیشون گفتن برای عطا الستسخاب ملا محمد علیه استرابادی حرفش اینه خب گوش کنیم میگه ما باید احکام کامل شده نقص توش نیست یا از کتاب یا از سنت این دوتا هم به بیان اهلویت بیان نگه قبول نمیشه در مرحله جز لَأُنْ ذَرَكُمْ و من بلغ این بلوغ و اینجوری باشه قرآن و اهل بید به تفسیر قرآن و سندت به تفسیر اهل بید نجای براعته نجای استسحاق نتیجه چه کار بکنیم ترهش اینه هر جا که رسیدیم و حکم نبود اگر حکم کنیده بود احتیاط میگه ما از زبادی اللي زاخ همین گفت مشالا من اباظه رو میخونن اصلا ایشون بحثش حالا اون گفتن قطع حاصل از مقدمات غیر شرعیه اصلا بحث این حرفا نداره ایشون من اباظه چون میکنم یک یه کل ابهاسی که شما به اسم اصول داریم موقع همش باطله اصلا اصول من البدء از حق باطله بحث ملازمتون تون باطل بحث مقدمه واجب بحث و بحث باطل بحث اقتضاء و از همه چی بحث استصحاب باطل بحث براءت باطل همه این باطله بحث مرجعات در باب تعادل باطله کلن باطله اون یه خلاصه ای داره خلاصش اینه که اگر در موضوعات بود بله برایت جایی میشه استثاب جاری میشه. دیروز زد زده بود امروز برده دیروز مالک بود تو موضوعات جاری میشه. توی احکام که رسیدیم کتاب و سنت به تفسیر عهده بید نبود احتیاط این خلاصه فقهیشان خلاصه اوزونیشان بگید آه ما به قاعده ملازم به استصحاب حکم کردیم به حرمت وسیله میگه نه آقایین استصحاب خودی پس بنابراین اهل سنت این مسئله روشن شد اهل سنت آمدن گفتن در اینجا روایت نداریم آیه نداریم از پیغمبر چیزی نقل نشده ما با فضا سازی و با حب عقل به یا فضا سازی به تعبیر بنده یا حال دیگری که از کینه می خوام چون سابقا توضیح ما میرسیم به استصحاب و حرمت. تو آوا حرام گفتم مقابل. اون مقابل آمد گفت این استصحاب به درد نمیخوریم این فلسفه کافی نیست. در تکلیف میکنین برائت. ایشون آمد گفت نه استصحاب نه برائت. احتیاط. و هر علم علم حجت هر چی اسمش شه. اصلاً ایشون بحث قطع نداره تعجب می کنه. تسریح ایشان. تعجب من از آینه واقعا. اصلاً میخونم من ابن عبار چه اول در شده که کتاب یه فائده که مراد به علم در اصطلاح من علم عادی نه علم اصطلاحی یعنی <تصحیح> حجت میگه ما هیچ این موارد تصریح هم میکنه من بعد اواتریش رو هم اجواناً اجوالا تعبیر میکنه بعدم یکی یکی میاره میگه ما مقدمه واجبه باطل بحث ترجیحات باطل بحث است یکی یکی ابواس اصول میاره حالا منده خلاص میگه من اول خلاصه بگم حالا تفیلن میگه من عبارات ایشونو براتون میارم ایشون خلاصه پس ما الان 8 تا درس اصول داریم نه همیشه یهودی هست میگه این حساب خودی خود عمرت رو بر سال ما اصلا میگه کل اصول به قول کل اصول فزوله میگن به نظر کتاب چیه؟ این یک نیست این میگه این بحث اصول نیست کل اصول این یک نقطه کم داره, فصول فصول. نقطه کم داره. اون بله میگن نه نظر کتاب چی این حالا اگر راست باشه این مرحوم روشن شد برسی مولا محمد علیه استرابادی حرفش نینه بحث قط نیز من تج... این بحثی که آهای خویی و دیگران من به شما عرض کردم آهای خویی میگه نظر اخباری ها در من صغرا و کبرا صاحب کفایی که در من اصلا ناظر به هیچ کدو بیزردم نه ناظر به من صغرا نه ناظر به من کبرا اون میگه شما اصلا هر چی اسمشی مخیب بذاریم حرف باشه و حجت باشه از غیر کتاب و سنت به بیان اهل بیت تازم خواهیم گفت تا بیان اهل بیتی که در کتب معروف اصحاب باشه روایت اصحاب باشه این چیز دیگه هم دارن دارم مالشان داره نمی‌چاره <تصفح> کتاب کتب اصحاب معروف اصحاب دیگه اصلا حجیت نداره بقیه‌ش اختیار اصولاً به همه چیز میره خلاصه مطلب این خ... اصلا بحثی نداره که منع اصفهانی داره منع کبرا داره لذا اگر دقیقه بفرمایی مثلا بحثی که تا حالا با این توضیح که من دادم الان بحث های خوبی رو نگاه بفردن. از اول بحث آقا تا آخریش اصلا جای دیگر هستن کلنج دیگر هستن ها بحث باید می اینجا اصلا به مقام که عدم اینجا اینا میتونن تونستن بگن آقا و من بلق من بلغ اطلاق داره به استصحاب من بلق اطلاق داره منبلن اینا در حقیقت میخوام بگن علم طریقی که در باب تنجسه اطلاق داره شامل تمام این انواع میشه اون میگه نداره کتاب و سنت به بیان اهل بیت خوب دقت بکنید والا باب تنجس میبره چه کی مقام تنجسه عارف جنگ خب کی میشه مقام جلی که مغيره خب نوشته میگه مگه مراد باطنیش این چیز دیگه باشه تحصیل میکنه در باب اینجا خلاصه مطلب روشن شد پس اون روایات اصلا اصلاً ایشون به هیچ خودم از این بحثا نیست نه نظرش این است که قطع پیدا میشه یا نمیشه نه نظرش به حجیت قطع اصلا اون خلاصه روشن من نمی دونم براتون روشن خلاصه بحث این است که ایشون یک راه جدیدی رو در استنباط احکام یه فرمول جدیدی داده خلاصه این فرمول جدید کل اصول رو بذارین کنار نوشته اصلا تصفیل میکنه بحث ترجیحات بحث مقدمه واجب همین ملازمه که ایشون روشن قطعیه بحث ملازمات تمام این بحثات روشن باطل باطل به چه معنا بی این معناشون میگه این ها زنی هست هم مرادشون زنی ها اعتبار نه زنی هست حسول زن و عیل اون این چه قطعا در این شریعت مقدسه قطعاً و جزمن درسته کتاب و سنته این جزمن و قطعا و هم که کتاب و سنت که جزمن درسته همونیه که اعیمه برموندن از ابان ابن از ابانن و تقلید نقل شده معنای شیعه انصافا خیلی ظریفه خب مردم مولا که از مردم مولا هم باد کله گفت تو شیعه کسیه که وقتی صحابه پیغمبر در سنت پیغمبر اختلاف کردن به علی ابن ابی برگرده و چون در کوفه بود در کوفه هم چون سنی و غیر سنی از علی اونجا ابو حنیفه از علی اونجا و اگر الان کسی در نقل از علی ابن عوی طالب اختلاف بکنه به جعبان محمد برگرده خیلی کلام واقعا جامعه کرده گفتون شیعن این وقتی صحابه اختلاف کردن به علی ابن طالب برگرده الان هم اگر در مبنای علی ابن طالب اختلاف کردن به جعبان محمد برگرده این خلاصی این چونم این مطلب رو شده کل و اصول میگه ما به جای این بحث می ها میده همون رواهات نگاه رواهات های که ایشون خطیقی میدونه حالا اصول عربرمه و فلان یه بحث های خاصی رویشون مطرح کرده یه بحث روجه این که آیا واقعا رواهات خطیقی است و حصول عربرمه چیست و بحث اینجوری با ایشان ما داریم که انصابا در اونجور خیلی کلمات ایشان خلل داره یه بحث هم این بحث کلی و قانونی روشن شد بحث قانونی بگه باید توی روزنامه مجلس باشه اون روزنامه هم تو شهرداری باشه تو خیابون بگیری به درد نمیخوره تو بیاون پیدا بکنید اینا میخوان بگم نیست سری واقعا با این متعارف نیست شما علم به حکم پیدا کردین این علم برای شما حجیت داره این ده سال از وقت گذشت که عز میخوام دیگه چون چاره‌ای نبود و فردا این شاءالله تتمه کلمات یه یعنی مقدار کلمات و استاد مونده که با ترجمهش بدیم بعداً من با از کتاب فواد المدنیه مرحوم آقای استرابادی میخونم مصال الله علیه محمد محمد میخونم کتابشون فواد المدنیه از اول تا آخر از شو همه شو همه میدونیدیشون میگه نام باطن خلاصه میگه نمیخواد یک جش از این کتاب رو جر کردید برای همین جا. و هایی که خواب ایسی یکی که مباید بسید کنه محفظ مرازمه محفظ تحکیه